سلام به شنوندگان کانال هزار افسان. از این کتاب زیبا داستان خورشید خاور و خرامان چین رو تقدیمتون می کنم. امیدوارم خوشتون بیاد و تا آخر داستان همراه من باشید. خورشید خاور یکی از افسانه های مورد علاقه مردم کرد زبان است. این افسانه را در اغلب روستاهای کردنشین می توان شنید. جستجوی دلداری که دلداده از طریق دیدن عکس شیفته او شده است و لشگرکشی به کشوری بیگانه برای رسیدن به او و صحنههایی از این قبیل از جازبه این افسانه قدیمی است. یکی بود یکی نبود. دوزگارای قدیم در خاور میان پادشاهی حکمرانی میکرد که با وجود داشتن جاه و جلال و شوکت زیاد جا کور بود و بچه ای رو نداشت و تنها آرزوش داشتن یه دونه فرزند بود. اون دائم دستاشو به آسمون می برد و از خدا می خواست که فرزندی رو به اون بده. روزی از این روزها که مشغول نگاه کردن به آینه بود آه از نهادش بودن شد. چون دیگه تمام موهاش سفید شده بود و به این معنی بود که آخر عمرش نزدیکه. هنوز آینه رو زمین نذاشته بود که یکی از نوکراش خبر را بود که یکی از شیخهای بزرگ برای دیدن اون اومده. شاه این دیدار رو به فال نیک گرفت و دستور داد که شیخ رو پیشش بیارن. شیخ بعد از نزدیک شدن به شاه، شرط ادب رو به جا آورد و بعد از دعا و سنای بسیار دستشو تو جیبش کرد و یه سیبی رو بیرون آورد و گفت قبله آلم به سلامت باشه. من آه شما رو از راه دوری شنیدم. از درد دل شمام آگاهم. این سیبو بگیرید و نصفش کنید. نصفشو همین امشب خودتونو نصف دیگرشو به ملکه بدید تا بخوره. شیخ از اونجا دور شد و شاه سیبو گرفت و مثل دستور شیخ عمل کرد بعد از نه ماه و نه روز و نه ساعت و نه ثانیه ملکه پسری کاکلزری به دنیا آورد که موهای تلاییش مثل نور خورشید صورتشو گرفته بود و روشن کرده بود اسم اون پسر رو خورشید خاور گذاشتن خورشید خاور پسری زیرک و باهوش بود و پادشاه از همون اوایل کودکیش دستور داد که تمام فنهای سپاهی رو بهش آموزش بدر و در نتیجه هنوز کوچیک بود و به هفت سالگی نرسیده بود که به کل فنون لشکرکشی کشی آشنا شده بود. وقتی خورشید خاور به چارده سالگی رسید به شکار علاق من شد. روزی از همین روزا به شکار رفته بود که توی شکارگاه مردی بهش نزدیک شد و عکسی رو برای فروش بهش داد. شاهزاده عکسو گرفت و نظرش به عکس جلب شد. عکس مربوط به یه دختر قشنگ و زیبا بود که شاهزاده و خرید و با همون نگاه اول دلباخته عکس شد. تصمیم گرفت تا صاحب عکسو پیدا نکنه از پا نشینه. بعد از پرسوجو و گفتگو با این و اون معلوم شد که صاحب اون عکس دختر پادشاه و خاقان چیم بود. شاهزاده ناراحت شد و یه عالم غم توی دلش نشست. چون دسترسی به اون دلار سخت و دشوار آقابت یه روز تصمیم گرفت که یه لشکری رو فراهم کنه و بره به چین خورشید خاور بدون اینکه به خونوادش بگه با سپاهی به سمت چین حرکت کرد هنوز چند تا منزل نرفته بودن که به یک قار رسیدن از ته قار صدای نوزوک و ضعیفی به گوشش میرسید شاهزاده از از پیاده شد و به سمت صدا توی قار رفت هنوز به ته قار نرسیده بود که به یه دیو گندهای رسید دیو صدای پای شاهزاده رو شنید و بوی آدمیزاد به مشامش رسید و در نتیجه بیدار شد خورشید خاور با دیو گلاویز شد و اونو کشت و دنبال صدا به ته قار رفت ته قار یه دختری رو دید که دیو اون رو اسیر کرده بود شاهزاده دختر و از قار بیرون آورد و ازش پرسید چی به اسارت دیو در اومدی؟ دختر گفت تو بیاغون علف میچیدم که دیو منو دزدید و آورد اینجا. اسم منم گلسنمه. شاهزاده گلسنم و با خودش همراه کرد و به سمت چین رفتن. در بین را به شهری رسیدن و دیدن اددهی جمع شدن و در وسط معرکه یه قهرمانی داره مبارز میطلبه و میگه که هر کس منو مغلوب خودش کنه تا ابد غلام حلقه بگوششم. خوشید خاور وسط معرکه میره و با جنگ تن به تن قهرمان پر ادعا رو مغلوب میکنه. قهرمان غلام حلقه به گوش شاهزاده میشه و با اون به سمت چین را میافتند. رفتن و رفتن و رفتن تا به دروازه چین رسیدند و به یه دشت بسیار و بزرگ و پهناوری رسیدند که خاقان چین توی اون خیمه و خرگاه بزرگی زده بود شاهزاده به گلام همراه با گلسنم خودشون به شکل تاجر طلا و جواهر درآوردند مردم برای خرید جواهرات دورشون جمع شدند خبر به خاقان چین رسید که چند نفر تاجر به اونجا اومدن پادشاه چین یه روز شاهزاده و قلامشو به دربار خودش دعوت کرد شاهزاده و همراهاش به اردوگاه شاه رفتن توی اردوگاه شاهزاده دختر مرد علاقه خودشو که قبلا عکسشو دیده بود اونجا دید و خیلی شاد و خوشحال شد دختر خاقان چین اسمش خرامان بود خرامانم با دیدن خورشید خاور بهش علاق من شد. خرامان یه کمی طلاق و جواهر از خورشید خاور خرید. اما خاقان چین نسبت به شاهزاده و همراهاش به شک و تردید دچار شده بود و به جاسوساش دستور داد که مواظبش باشند و اون رو تعقیب کنند. بعد از مدتی به خاقان اطلاع دادند که اونا تاجر نیستند. و که اون خورشید خاور پسر پادشاه خاوره خاقان چین دستور داد که شاهزاده و همراهش به زندان بندازن خرامان از شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد و پنهانی کنیز خودش پیش شاهزاده فرستاد و به اون اطلاع داد که برای نجاتش راهی رو پیدا میکنه. خورشید خاور همراه همون کنیز به خرامان خبر داد که نگران نباشه و فقط اگه امکان داره یه مرد شجاع و زرنگ رو به دیدن اون توی زندون بفرسته خرامان یکی از غلامای زرنگ خودش رو پیش خورشید خاور فرستاد خورشید خاورم به غلام گفت که هرچی سریعتر به سرزمین خاور برو به پادشاه خاور خبر بده که پسرش تو بند خاقان چین گرفتاره غلام سوار بر اسبی تند رو شد و با سرعت به سمت سرزمین خاور رفت و به پادشاه اونجا خبر داد که چه جریانی پیش اومده. پادشاه خبر با شنیدن این خبر لشکری بزرگ رو فراهم کرد و به سمت چین حرکت کردند. دو تا لشکر نزدیک دروازه که چین به هم رسیدن و جنگ رو شروع کردند. تو همین جنگ بود که خرامان خودش رو به زندان رسوند و خورشید خاور رو آزاد کرد خورشید خاور به میدون جنگ رفت و بعد از پایان جنگ خاقان چین از علت اومدن شاهزاده به سرزمین چین سوال کرد و بعد از اینکه فهمیدن جریانشون چیه با همدیگه سول کردن اما از اون طرف بشنوید از خرامان که پسر اموی داشت که آشقش بود و قصد داشت با خرامان ازدواج کنه پسر عموی خرامان وقتی از موضوع اطلاع پیدا کرد دست به مخالفت زد و بین اون و همراه های شاه یه جنگ سختی در گرفت اما شاه ساده تو این جنگم پیروز شد و بعد از این پیروزی خورشید خاور با خرامان ازدواج کرد و در اردوی پادشاه جشن بزرگی به پا کردن و در این جشن گل سنم و غلام حلقه به گوش شاه هم با هم عروسی کردند. همونطور که اونا به آرزوشون رسیدند امیدوارم شما هم به آرزوی خودتون برسید خورشید خابر و خرامان چین برگرفته از کتاب چاپ نشده آداب و رسوم مردم پاوه نویسنده دلشاد تهوری 1354 سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی